بسله اول آقای جونز مالک مزرعه مانر به اندازه این بود که شب وقتی در مقدانی را کرد، از یاد برد که منفظ بالای آن را هم ببندند تروتلو خوران با حلقه‌ی نور فانوسش که رقصکنان تاب میخورد سراسر حیات را پیمود، کفشش را پشت در از پا آب بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو را از بشکه آبدار خانه پر کرد و افتان خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آنجا در حال خور با بود به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب جنب و جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهم دهان, دهان گشته بود که میجر پیر خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب به گذشته خواب عجیبی دیده است و میخواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر آقای جونز در میان نباشد همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجر پیر همیشه او را به این نام صدا می‌کردند گرچه به اسم زیبای ویلینگدن در نامش کوشش بود آنقدر در مزاد مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقت شنیدن حرف‌های او کنند در یک سمت تپه‌ای بزرگ در محل مرتفع سکو میجر در زیر فانوزی که به تیر آویزان بود روی بسری از کاه لمیده بود دوازده سال از عمرش میرفت و اخیراً کمی تنومند شده بود خوک با آزمتی بود و با اینکه دو دندان نیشش هیچ گاه کند نشده بود ظاهری مهربان و مجرب داشت دیری نفایید که سایر حیوانات به تدریج آمند و هر دسته به شیوه خاص خود در محل قرار گرفتند اول سکها، بلوبل، جسی و پینچر آمدند و بعد خوکها جلوی سکو روی کاه مستقر شدند موقعها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها، بالزنان و تیرهای سخت جای گرفتند گوسمدان و گاوهها پشت سر خوکها دراز کشیدند و مشغول نشخار شدند دو اسب عرابه باکسر و کلوبر با هم آستا وارد شدند سمهای بزرگ پشمالوی خود را از ترسانی که مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان شده باشد با احتیاط به زمین میگذاشتند با حالتی مادرانه که بعد از بزنی آمدن چهار رومینکوروش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود باکسر حیوان بسیار درشتی بود برندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه دو اسب معمولی خط سفید رنگ پاین پوزش به او ظاهر احمقانهای داده بود و حقیقت مطلب اینکه در رزمره زیرک های درجه یک نبود ولی به دلیل ثبات و نیروی فقلادهاش در کار مورد احترام همه بود پس از اسبها موریل بوز سفید و بنجامین علاق وارد شدند بنجامین سال قرده و بدخوق حیوان مزرعه بود. کم حرف میزد. اگر سخنی میگفت تلخ و پلکنایه بود. مثلا می خدا به من دم عطا کرده که مگزها را برانم ولی کاش نه دمی می داشتم و نه مگزی آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ و اگر علت را می, می چیزی برای خندیدن نمی بینم. مع از بیان که نشان دهد به باکسر ارادتی داشت این دو یک شنبه ها را بیان که حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا میکزنند. دو از تازه جابجا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند جیر جیرکنان دنبال هم وارد شدند و از این سو به آن سو پی جایی گشنگی که زیر پا مال نشوند اولور با دو پای جلوی بزرگ خود برای آنا حسار مانندی ساخت و آنها میان آن آشان گرفتند و خواب بهخواب در آخرین لحظه مالی مادیان خل سفید قشنگ درشگی تک اصفی آقای جونز می کشید در حالی که حفظ قندی می با ناز و عدا وارد شد در محلی نسبتا جلو نشست و مشغول ور رفتن با یال سفیدش شد به امید آنکه به ربان قرمزی که به با آن بافت شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد به طبق معمول برای پیدا کردن گام در اینجا به اطراف نظری انداخت و بلاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوبر جا کرد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پداخت و حتی یک کلمه از سخنانی میجر را نشنید جز مزر زاغ علی که برای شاخه درختی پشت در بود همه حیوانات حاضر بودند وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و مندازرند سینه را صاف کرد و چنین جون کرد. <تصفيق> رفقا همه راجب خواب عجیبی که شب قبل دیدم شنیدید راجب خود خواب بعدا صحبت میکنم مطلب دیگری است که باید قبلا بگویم فکر نمی کنم رفقه که من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می موظفم تجاربی را که به دست آوردم پیش از مرگ با شما در میان بگذارم من عمر درازی کردم و در طویل مجال بسیاری برای تفکر داشتم و تصور می کنم می توانم ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این عرصه دنیا آشنایی دارم در این زمینه است که می خواهم با شما صحبت کنم افقا ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه است پر مشقت و نکبت بار به دنیا می آییم جز لایم لایمودی نداریم و از بین ما انهای که قادر بکاریم تا آخرین رمق به کار گمرد می به مجردی که از هی زندقاب بیفتیم و بیرحمی تمام قربانی می شویم هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از یک سالگی به بالا نچشیده است هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست زندگی یک حیوان فقر و بردگی است این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چنین وضعی در واقع لازمه نظام طبیعت است آیا این به این دلیل است که این سرزمین انقدر فقیر است که نمی تواند به ساکنینش زندگی مرفعیت عطا کند نه رفقا. هزار مرتبه نه حاک انگلسون <cał tunnels> خاصرقیز آب و هوایش مساعده است و استعداد تهییه مواد قضایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند دارد همین مزرعه ما میتواند از دوازده اس بیست کاب و صدها بوستن نگهداری و پذیرایی کند طوری که همه آنها در رفاه به سر برند چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما است پس چطور است که ما با این نکبت میکنیم؟ علتش این است که تقریباً تمام دسترنج کار ما به دست بشر روبوده می شود آری رفقا جواب تمام مسایل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته به یک کلمه بشر خلاصه می شود بشر یگانه دشمن واقعی ماست ما بشر را از سنه دو سازید ریشه گرسنگی و بیگاری برای ابد خوش خوش بشر یگان مخلوقی است که مصرف میکند و تولید ندارد نه شیر میدهد نه تخم میکند ضعیقتر از آن است که گاوآهن را بکشد و سرعتش در دویدن به حد نیست که خرگوش بگیرد مع عرباب ارباب مطلق حیوان است اوست که آنها را به کار میگمارد و از دسترنج حصله فقط آنقدر به آنها میدهد که نمیرند و بقیه را تصاحب میکند کار ماست که زمین را کشت می کندند ماست که آن را حاصل غیز می سازد با این بح ما ها صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوانی که جلوی من ایستادهید سال گذشته چند هزار گالون چی داده و بر سر آن شیر که باید صرف تمتگوساله های شما میشد چه آمده است. هر غطره ی آن از قوم دشمنان ما پایین شما این مرغان در همین سال گذشته چقدر تو اید و چندای آنجوری شد بقیه تمام به بازار رفت تا برای جونز و کسانش پول گردد. و تو کلوور چهار کرده که بایستی سر پیری اعصاب دست و سبب نشاط خاطر تا باشند کجا هستند همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهید دید در ازای چهار کرو جان کندن دائم در مزرعه جز جیره ی غذا و گوشه ی چه داشته ای؟ تازه، نمیگذارند این زندگی نکبت بار به حد طبیعی خود برسد لحاظ خودم شکایتی ندارم چه من از جمله خوشبخت ها بودم دوازده سال عمر کردم و متجاوز از چهار ست طولی آوردم زندگی طبیعی هر خوکی چنین است اما هیچ حیوانی نیست که بلاخره از لبی تیغ رهایی پیدا کند شما طول خوک های پرواری که جلوی من نشستید در خلال یک سال همه روی تخ سلاخی زجتان به آش آجفت این مصیبت بر سر همه ما گاوان و خوکان مرغان و گوسفندان خواهد آمد حتی اسبان و سگان هم سرنوشت بهتری ندارند تو باکسر روزی که عظلاتی نیرومند از قدرت خود را دست بدهند جونز تو را به صلاخی میفروشد تا سرد را از تنج تا سازد و برای سگهای شکاری بپذد تازه ها هم وقتی پیر شدند جونز آجری به گردنشان و در نزدیکترین برک غرقشان میکند بنابراین رفقا آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته بشر را از میان بدارید و مالک دسترنج خود شوید فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم چه باید بکنیم بسیار ساده است باید شب و روز جسمن و روهن برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم رفقا پیامی که من برای شما آوردم انقلاب است من نمیدانم این انقلاب کی عملی خواهد شد شاید ظرف یک هفته شاید بیش از یکصد سال اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می‌بینم، قطع یقین دارم که دیر یا زود ادالت اجرا خواهد شد رفقا این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر دارید و از آن واجب در اینکه این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی میگذارند برسانید تا های آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند افقا به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد هیچگاه به کسانی که میگویند انسان رو منافعند و حیفان مشترک المنافعاند یا ترقی یکی منود به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید این حرفات دروغ محض است بشر به منافع هیچ موجودی نمیاندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند در این هنگام اختشاش عجیبی ایجاد شد وقتی که میجر گرم سخنانی بود چهار موش صحرایی از سراخهای خود بیرون خزیده بودند چون باطم مزده بودند و مشغول استماع سخنانی بودند چشم سکان و نگاهان به آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بودند صرفا در اثر فرار سریع آنها به سراخهایشان بود میجر پاچه خود را با عنوان سکوت بلند کرد گفت رفاقا در اینجا ای است که باید روشن شود و آن اینکه حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و قرگوش در عداد دوستان یا دشمنان بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد میکنم که موضوع آیا موش‌ها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شد فرا رأی گرفتند و با اکثریت چشم گیری شد که موش‌ها از دوستانند فقط چهار رأی مخالف بود سزگ به گربه بعد معلوم شد گربه له و میجر به سخن خود ادامه داد مطلب زیاری برای گفتن ندارم فقط تکرار میکنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه رو روش و روش او به یاد داشته باشید هر موجودی که روی دو پا راه میرود دشمن است هر موجودی که روی چهار پا راه میرود یا بال دوست است همچنین خاطر داشته باشید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنیم حتی زمانی که بر او پیروز شدید، از به او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سگنا بجیَد یا با تخت بخوابد یا لباس ببوشد یا الکل بنوشد یا دوخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد یا در امری تجاری وارد شود. تمام آزاد بشری زشته است. ما در از همه اینکه هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمان رفتار کنند ضعیف یا قوی زیرک یا کدن همه با هم برابریم هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشند. همه حیوانات برادرند و حالا رفقا می سر داستان خواب شب قبل من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته اما خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم سالها پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم مادرم و سایر خوکای مادر سرودی قدیمی میخواندند که جز آهنگ و سه کلمه اول آن را به یاد نداشتند من آن آهنگ را در بچگی که میدانستم ولی مدل بود که از خاطرم شده بود ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رویا به آمد و عجیتر این اینکه کلمات سرود هم به خاطرم آمد بله کلمات یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در ازمنه خیلی پیش خوانده میشده و نه از که به دست فراموشی سپرده شده است رفقا من همکنون این سرود را برای شما میخوانم. من پیرم و صدایم خشدار و گرفته است اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید اسم این سرود حیوانات انگلیس است میجر خود را صاف کرد و شروع به کرد همونطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود ما سرود را به به شایسته ای خواند سرود پرحیجانی بود و آهنگ چیزی بود به نکولامانتاین و لق رجه و سرود این بود بیست ای بی بی ای سراسر گیتی همه خاموش و چشک به من می دهم ده مجدی مسر رد بخش خوشتر از این نبود نیست آن با امید آنکنان روزی که بشر مه گردد ما وین هم دشت های سبز جهان خاص ما شود چه دیر و چه زود یو ها دون از گردن حلقه باز گردد گرد از بینی بر سر دوش ما و هوش دگر نپند رنگ بار سنگیه گندم و تاو شبدر و سیفی دنجه و زرت و چغندرو جو هرچه هر از خاک سر کند بیرونهرچه از خاک سر کند بیرون میخوریمش نبود رنجه درو گشها سبز گرو روشن زوی باران ظلال گردر و پاک نرمتر بادها وزب خاک هر پاکتر سبزهادمن اس خاک Tune me, Rosie, mid the dark night. Mujdekan, rose, rose of Shadi. me. Of the golden future time. خاندن این سرود حیوانات را سخت به حیتان آورد مجر هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزه میان کردند حتی کودن ترین آنها آهنگ و چند کلمش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوکها و سک ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از برداشتند پس از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند. گاوان با ماق، سگان با زوزه، با ببه، اسبان با شیهه و مرغابی ها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که پنج بار پی هم کردند و چه بسا اگر اتفاق پیش نمیآمد سراسر شبه خاندن ادامه می دادند بختوان سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است تفنگی را که همیشه در کند اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت ساچمه بر دیوار تپیل نشست و جلسه به سرعت به هم خورد و همه به محل خواب خود گریختند پرندگان بر ها و چرندگان پرندگان بر ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه‌ای تمام مزرعه را سکوت فراگرفت.